ما کسی رو که در که شروع که برای از موسیقی نمیگه باید که پوشه من دادم که تا نوشی من رفت مثلا ماهور سمانه اگه اشتالان شداشت اولی سوال رو برده پرستم در مورد تفاوت ماهوری مبنی رجالی و فهرسی اصلا ماهور اون نشید چون وارز بیرون نمیتونی اجمالا ولی اجمالا حالا چون الان پوشتی تا من در حد چند زمین رو سرازه کنم مشخص تاغیده بسید تفاوت ماهوی مرورای تیورستی و رجالی در اعتباس همیجی من که وی متأخرین است از اواقع در هست برای بر بر بر بر در اعتباس همیجی در شروع شد تو تا اگر آن بل بل دلان دلان. دلان دلان دلان در این شبیک بعد که تدبیرش خودجیات فقر و ندیس بس عقیده اختیار بودیه الله تعالی الله سبحانه حالا تعالی او بر ماونی نمیپذیرد دو قسم بندگی آورده است حسن موثث و این دو مبنای اساسی در تأسیس علم در که وقتی میگیم مبنای رجاهی، همین مبنای رو برسه که رو برسه که رو برماز تو روزه ها حالا وقتی اختلافی و تو روزه ها جمعیه هم داشته الان هم عمودتاً حالا که دو رو هم کاری هستن حالا کسامی که خود هم زدتا دولار یه دیگر هم موسیقی هم و هم از زود آقا و همه اختلافات درمی که درم دارم که حالا اشاره میکنم که حالا اشاره میکنم که اختلافات درمی دادن ولی اون دوتا مرمه اصلی و همه دازمی اصطاق رو پذل کرد حالا خودی اون دیرایشتون میشه به دو وحش دهتون کرد سبری از فرقه هایتونه برای مفعا و ارانی مرمه های مطالعاتی بگوشی مفید باشه برای آینده بگوش نگوش الله اختلاف باحت بود خود کسانه که توی مرموهای رزنگی حریفتت و میشه به دو گرالش و قریم نهور حبسه بر می کنن نصل نهور که که اطلاعاتی ما در بروره بیا اطلاعاتی که از من رجالی میگیره حالا من رجالی به چی کاران رو می از منابعی رجالی میدونم مثال نهبر اصلی در هردش بزاری برگاه و پس از هردش بزاری برگاه بیان هردش بزاری بر هرهای از دیگاه اونو مجموعه دارده های اطلاعاتی داخل است که منابعی رجالیه اینی اگر من از نظر نجای شیز شدم به این از نظرهای گویی زنی کنم شما از نظر آزبوری از دوستی شدی اگر ما آزگاه از دیگه خانش دوشید چندات آزام شدی خب. به تعلیم تجنگاه و پشتوانه این داده های منصورت وارد به منابرای رجالی مشخصه خب گروه این دیگری که از توانوانه قلیدنگی را نام در تعامل با اطلاعات منابع اجادی و حقیقت بیرونی اتفاق افتاده در حسنان رویان با چندتا مشکل مواجه میشه که به اون دیدگاه اصطلاعیه میزنه آنگه سندگی خالی همیشوند سندگی خالی همیشوند یه دونه بلند اصطلاعی همیشوند خواهد منابرای خب، اساس در دیگه در رو دیدن از طرف مجموعه اطلاعاتی در تشوارهای ایجاد دیدن با مشکلاتی مواجه میشن خب همین تا از این مشکلات نامیم برم دیگه میدنم که تبلیم کنم درای شکر خب ایکی از مشکلاتی دیده که اسناد روایات ما و کتابهای حدیثه ای ما پر از احادث راویان ظلیفه. ظلیف به چی معنی؟ به معنی که من نجاشی میگم، به معنی که شما اقضایی میگید، به من ای که شما کشکی میگید. می احادث رو شما در همه احادث ها در فقر آمده، در معارف آمده، وقتا ما معارف هست، در اماماتیس در, در آمده، در گزارشات خاطر آمده، در بزارش شده آمده هیچ ریز موضوع مرتبط با تعریف و شما تو نینیم تاییم بکارید که بگید در این. واقعا این دست و این ریز موضوع از نواره متأخری، سنید یا نه یا بشید، یا موسط چه یک مشکله، <متحد> یک مشکله هم هجمه مثلا راویان مجبوب میذاره رباریاتی که منامه رجالیی تو بود که اون پیامون ها نفرداختن. حالا گفتو به دارن نکنه یا اصلا مدخل نگردن اونها رو کسی ها نداشته سیدن از دوستین کنه اومده تفتیرش به طریقه چطور؟ خورده خب بارمخیتون که چیزه نمیزیم خب یه چیز خب این ها خب بودم که طبیعتاً این حجم امورو از سرارات نمیشه که نارگو داشته باشه ازایی تجدید نظری کردم به چگوریی برخورت قرد کنید چگوریی برخورت با از اطلاعات مناقضی رجالی و اون بخش کنان بخشه بخش چیز که به کار تزعیف را متوجه را بیان می کنم و به تعمیل دیگر یک باز اندیشی کردن در تزعیفاتی که در کتاب های روی شده یک دو سعی کردن با تحلیل های فوق هم دلال های یا قرآنی برای یک بصداقت راویان تزدیک شده دو، بصداقت راویانی که مجبور بودن پیدا بکنن خدا، توی این مرمو که اومد از اطلاع شداشت رو بریزن که در مراست در در این مرمو عرکت بکنن سیاری از راویانی که در مگاه مکتب آی پویی مثل محمد رو بیسته، ما هم مثل عوض خیلی مثل رو برسته بزرگی میشه که تذیب شدن اینا توصیل میشن لباراتشون میاد در حیطه ای ارتباع او این اونده یه تصویل از تغییر مرمانی رضایی مرمان هایی فریم چون تو این نگاه اسمی از کتاب دنیا نمیاد تو این این ممکنه یه موقعی شما شما برای شاهد او بودن بر بسراغت مثلا فرض می‌کنن به عبدالله ابن عبدالرحمنه هستن می‌گه دا اون چون به طریق به کتاب مثل ابن عبدالمنک واقع شده و شکل اجازه هست پس اونسه هست و که کتاب کنش موضوعیت نداره در ممناه فهرستی اونی که موضوعیت داره در اعتبار سنجی احال یک جتاب داره جتاب داره خلاسش اینه که جمعلا خیلی زیدشافه داره که الان من نه همش رو بردن اگه بخام راست دیگم دروب و شمالت باشن من نه جاشت باز کنم زمین که خود این ممنع یک سری ابحاماتی داره خلاصی برمایی که اشترینه مدار انتقال قفادی سشیره در بازشته کتاب ها بودن نه کتاب ها بودن که به عنوان کتاب های معتبر کتاب های غیر معتبر یا کتاب های فلط جونه معتبر شماخته می شدن کتاب های معتبر شد مثلا رفاقا دستی در حالا موارسه توی جوانی می آتن تر بوده هم مثلا فلانی لهم کتاب رو معتبر ومن ينزل اللهن نبوطا ان شاء الله كتاب حين ان الله ان كتابهم متعرب ازون میگن مثلا فرض کنیم علی هاشمی سماه و اون کتاب رو سما و تفسیرا بوشن لا يتانوا ولا يستن بشكل دعنا از قران استغفر محمد من اهل نخعی نه هوت و اوتا نیت دیگه ارزش این می نده خب مدار اعتبار بخشی و احادیس است. کنید یک کتاب وقتی نوشته می شده. از چه اون با اون کتاب وقت می کردن از هم از زمان تعریف کتاب و عرضه اون کتاب در اصل خودش و هم در بزنه تعلیف بلوار الان مثلا کسا اگر حقیقت احادیس موسط رو تعبی عثمی روايات اسبوعیت معزی و سقطی رو من آن رو کویم و آوردم تقریبا وقتی تاریخ کتاب و از یک اینواریت در از خان گرد و قرار گرد و از خانون رو باری برست اصل کنن یعنی این ازالا لم یک کنیم و اله خبی دلیل روشه دیگه برن این خلاصه ممنوعی فیلت و جاگی خیلی تو ما داره مخصوصا ممنوعی فیلت استقبال این دفع شمایی بکننم اگر در ذهن و از وفاقان. این چونین نرشو که بعض من حضرال مجلس خل ردید بیاده این میکروفن خوب وقتی این وقتی این اشتباهه وقتی نه درمی من, من را بزاریم میستم میچیدیم می این آقای میسارو یه شب آره ها, خورده ها که خورده بودیم ما شباز یا وقتی میخورید سر دلتون سنگی میشه میگیم سر دلوم پدام شده بود سر دلوم پدام شده بود و ولی بعضی فکر کنند از اشتباه که بند پیلو و مرتبه ترکستی هستم نه. بند پیلو و مرتبه ترکستی هستم. تنالا چی هست که بند موضوعی هم ندارم شما رو مواعظ رو خواه کنند. این اجمال بشه. دوستان. به دست نگردید. نگرد. اگر فعایی هست. میرسه که بفرمایید خدا میرسه. خدمت ما جایی که از دوستان میشه به درست رو بشنرم استاد الرحمن، در رابطه با مسئله اسلام آوردن، درباره فکری بلوغ در تناوین جامعه سوال که چه بحثهایی از فواید اونها مورد توجه ماست الان مورد پذیرش ماست و چه بحثهایی از فواید وارونه متراینه بلوغ رد شده و الان دیگه مورد پذیرش ما نیست و بخش دوم که چرا واقعی اینها این ها این که الان مورد پذیرش ماست در زمان خودشون ترد شدن رد شدن تذیر شدن نگاه اهل دنیا چی در جرس تنویدش باید جواب <استان> خب اما <استان> <استان> ما هیچ کدام از باورهای های اعتقاد ندارم. یه سر تایی من بگم سیده نکره یک جریان انهلافی قلوب در بست امام با حضرت و پیدارش یک این است است من جایی ندیدم. پیدارش یک پندیدهی در میان اصطاق در عنوان ترس تاریخی و چراری بیانیش این ترس تاریخی و ترسیرش در گذر تاریخ و این تو از سه متهمان به گلوم نوانیان اما اگر نکره همیشه اتفاقات بزرگی اسبابات بزرگی تخریگید چه آبانگر تناسیف آنمای در هم میپره که در یک حیطه اصطاقی شماکو شده بودن و دارای مسئولیت و جارگاه اجتماعی شمایی بودن جریان قلوب هم از این وارد مستثنه هایست خب شما اگر بزارشتایی که در وزار کشی در حسوس دو نفر آمده یک محیرته کنه سعی دو قبل خطا جسم پایشون محمد ابن یا محمد ابن ابی زینت اول فتا اینجا از بزرگش رو که قاضی نعوم در دعام اسلام، آورده ببینید خلاصش دو نفر از از قصد شاقص دو امام بزرگوان یکی جناب مبیرتلی سرید در امام با با سلامون دارد این به جامعه بوده که من آقا میدیم حالان هم چه این رو میترسیم حتی تو بوزن هم میترسن مثلا دست شما بزنیم و بستارو در جا داری هم میدیم دست که آگه کش به برامنامه آلی هم دست دکیم به برگی از دعایت همون برمه میتوانم خب؟ می کم تکت خواهی نمی سر میتونم هم جامعه پاس افتاده هم به خاطر میگم که این شما مرد استفاده بود در اصل امان باور علیه السلام ببینیت در اصل علیه السلام جناب و عرور خطاب دیدتا تر میشه در یک نگاه جامعه و اتا. در یک نگاه جامعه و خوطا ما میدین دینیم جامعیت دین سرکن اساسی داره سرکن اساسی که این سلوکنه اگر جاشون عوض بشه یا برداشته بشه یکی، حقیرت با حوالیت دیر فعول یک خدای بطوار بالاترین موجود هستی که هیچ کس با هم مقالی نمی تواند شانه به شانه او بزنن و جاری اونو بگیره خدای بطوار خب دو خواست های خدا از بندگان که باید جامعه عمل پوشه این من از خودم نمیگم اگر که با حول خودجه، با حول اصطرار در خودجه سریعه منصوله نعازم رو دو این منصوله نعازم اون بزارش منازقه بین خودش بر بخشی از پیروان مدخل خدافار رو عزم میکنه یعنی منصال سلامون درنگش هست حالا از اونستازه پرسیده شده پس مجموعه که ما خواهد در خواسته جامعه عملتون درست سه، ما ترکیبش کنم کنه دیگه بیستش هم جاوزی فرده باشیم، میکشته از جاوزید مجرای دریافت این ها میزه هم. من و شما که احلیت دریافتشو نداریم. درسته پیلی اومنهایی در اعتباطی، سریف اتا عبیه دستتون، جهب در ، جهب دستی دستتون، او، ای ستا گرمزارم حبیدیت اصاستیت نیده کشتی دیده. تشتیده. پس خدا ایش که نمیتونه شده بشکنش بزنه. مذاقی که او از ما میخواهم. با در حد توانمون باید انجام بیدید، یک مجرائی هم برای دریات و اعلام خواست خواهی داره، در یک اطلاق کلی بشنگیم نها دسمه اگر در قالب نبوط خود چه بشنیم نگاهی در غالب وسیعت امامی خوب هم در اصل امام واقع توسط نمیده به مسکلی و هم در حص امام صالب سرمون و علیه امام توسط عبود فتا نیست ستا به هم روی نیست ستا هم این اول از یک نقطه شروع شما الان امتونی ببینید کنسان فرداتو همونی در یه مرنای رسولی جدیدی توی حوضه اعلام بکنید یوشت آروم آروم آسته باز میکنید تا خلاصه <تصفيق> شما اول هر دوشون خیلی که امام و امام صالح رایم اسلام نبی هستند یعنی یک باز چه تعبیر یک معنا مرحل. یک مرحله از تمامت اونم بالاتر چون اون نبی هستن برای بعضی شونام تبه و از انوارش ها اون مجموعه دانایی که در این یعنی مرتبط با تغییرتن اون تغییر هم جریان اون کجا این بسات مهمشون که دو جایش کجا بسات این بسات رو که با های ساده ده کنه تعلیم آدم های اینجه نه معرفت دیری داشتن نه بود به معرفت دیری داشتن که یاد می‌وجن شدن یا چه واجیزه تنظیم کردن اون اگه نماذ از خواند. بانات یمار هایی که گذاشته بودند. درست که در اثر یه ادامه‌دار دست میشه در ادامه‌دار اونجا یه اون مثلا گفتن بعد از این مورد که مقام امامت دادن رو ترفی دادند به رغبیت. اون رو آلیات که وجودی مباردیان صادق علیه السلام مرمون شیفتوسی تو اعوالشون نعلومی کنند احضر و کم القلات لا رو سمون همون میان این دنیا که آلیات دوتا نیجی بیدارند یو ست الله و یده او نجروه و یتن الله به سرگلون من و یا من تو الله یک هم که کشیده که هیچ زیر هیر حتی مورد حتی کافتگین، حتی مجوز، حتی نامی یهود، مشتکین، نسارا هیچ و اندازه غلاب اونجه به فرموکاست عظمت خدا نشده به شد دلون و الله و یدعاونه کنه بیمتر عباد الله یک درگه دیگه رو کردن خب خب این شدن بده خب این چیزیم میخواه از شما نگم پیاما از دریجی اقلاق میکنه موید رفتیم سره من اما فتا خب از دریجه چیه؟ خای داشتی دو پونه داشتی نخواد داشتی رو خاید نه, نه. زا امام اونجا می‌فرمان برای می که که هم می‌گذارش مرزو تو هر که مرزو شده می فرمان که نه می‌فرمان مقصده می‌آد خودش رو به ما می‌رز ما قبولش به نا یلح قلو مقصد و اینا یرجه اولواری اینا یرجه به نا یلح قلوان یرجه فلا نبگو فقیل که رسول الله شما شاهده شدید الان یکی شکنه نمیشه بکش بگم آقا از هم 23 مثلا لیمونت برای شو بگم برای شو بگم خیلیم خوش شما هستی از مستداشت شما هستی نمازن نمازن بارید بس از سر جاشت خب؟ فقید رسول الله فقاب و لا و علا و جل او غای بی دینی پشت زدن به فت دوری از خللا را نه دینه شده تو شدهش بین فرش ضا تو برخی از گزارش کاری که جناب و بازی نورمان اووردن و به گونه دیگر تو کشتی هست تو کل که فکرتر فدمت امام هم بفتم که آقا پلانی بگه این هست قضا تره جنون، این هست دادتره جنون، این هست حج جنون، این هست بازات واقعی نیستن تو مر رو بشتن از مرکا رو از حج انجام دادی، نوازت خمودی زد قاطع دادی، گذرته گرفتی، خب؟ تو گذاردش که آزید آمام هم بوده چیزای پس دیگه مثلا به نسخا و عوال خطاب کل ما فقل علیهم عدا و فریزتیم عطا و فقاوی عوال خطاب خفف علینا که نمیشه ما رو تو تیری و عوضه بگیریم حالا آرام آرام بساد شریعت برچیده شده خب بساد شریعت چی برچیده شد موقعی که عظمت خدا فوقاست شده موقعی که اون نیام دیگه امام صادق و امام رو که یعنی اون اصلی هستن به هم خب اینا پشت چی شده بودن پشت مقامات واقعی امامت و بزرگ کردن اون مقامات برای امام استاده سفله اون که دومالش می آسدن سفله رو درم از سفله در رو جستجو بپریدم تو کشکی میادن؟ جو دیگه خب سفله به آخر چزدان سفله خب این اتفاق بود. این اتفاق افتاد در ما امام صاده سلام چند زیادی چرا اونجا هز بودن اهدر و علا شما بکنه بودت. نگفتن، زهار عواظه بخوره کشم، من بخوره در رو درستم عواظه بخوره کشم، در حوالا شبه گفتیم این از که ساده اندیشم، نوست دارن، نخواه رو عرفت بینی درستم، خب حال، تعبیلی، آنچه که موجب شد، اینا تو این سلوه برداشت بشن یکی مجموعه ی روایاتی بود که اگر بنا خودشون کنه دست اون روایات بنام تونه درست تحلیف کنه بعد پایی اصول مستنم اعتقادش به اولویت رو رویت عمیم می انجامه بازوان هداره مدیس که این موقع یه جایی بحث داشت مثل تاریکی کشتیم در رفعه ها گفتن چشمان تو ببندی از مجموعه روایات که تو بود بوجه با که انتفاق که بعضا هم سنده مختبری اگر یک چندی ساله کنیم تاش کنماته گفت خدایی اما ساله میدوندون خدایی ما سازه اندشه میکنیم خب میکنیم. این پرس زفار تا سخت طرف اینجدی این طبیبه. این طبیبه دو تا اتفاق رو یک تنس. پس داریا و تأییدش آموزهای امواتی که همگانی نیست، همه گونه آیا سر مالش شماست؟ یا سر موارد مالش شماست؟ مال من نیست. یا سری موارد نه مال من نه مالش شماست؟ مال اوست. شماس یا سر موارد نه مال من نه شماست مال اوست؟ مال او چیه؟ یه مثال رو اینی مردتون بسنم که سراد مطورم دره خب جواب رو از این از شما تو مناوره رجال ایمان روید بخشوزم نجشی نجشی یه شننگ میگه دستش خب از سر تا پای جواب نیزید رو آن میشوید نیست صرف در اون انتباه فکریش، اختلاطش، ضعیب بودن شاید داشت، مخربت بودن شاید داشت اشکاری که من همون مفیر می کنند در مجلس که آمارین آدم بارم درسته نیست؟ من اون مجلسی کرده در زمان حیات خود جاوهه این منکه اون که جاوه رو پرجه میکرده اسباب، اسباب نمی که درسته یکی از این اسباب به نام بیدن اول خلاله؟ که میاد می‌هاهد کش توصیبش هم سه ست گزارش داره از زیاده بناران حالا خب خب اون تحصیب و این تحصیب می‌کنه سر تاریخ بیاری می‌شه زیاده بناران حالا گزارش داره من اون را چی جامعی‌ترش رو تقلیم می‌کنم از کن تو قد سمعتم این جاور احادی به سر و فعادی و ضد تو فی‌ها زیر پن شدیده سم بی هم هماری ساعت میدم اما مثل ما میسی که زود انگ میزنیم آه که میتردش که که تجربه ها بیش دو را که که به مامون نمیزده اون که من دیدم مثلا تا شیدن دو تختیر این دار آه که بقیه است حواست میده بخورمونی از که در طور شبال دوست چی بار میکنیم فقلت برم پیشنه مصدده الله و محوقام ولی این اینجانا کنید و الله المغرت شد الله، در اون مواجهه این و واسه جواب دو سال تعریف بشه امم البته استفسار مشاهده حتری مثلا موارد تو سطر گذار داشتیش میگن قبل از حق من عزاد فرمودان فلم ما دفنت و علی نفا فقاد ما تفلت و علی ابتدا علی الله جابر و زیاد الرحمن جابرن جابر بن یزید جوکی لعن الله ابن اون مشابهت یا بیچه را چون یه سری اتفاقات یک سری مقاماتی رو یه سری ریواناتی رو هزار کجاوی رفتن هم به دیگه همون نگفتن خب ایچی اتفاقات نفسی کاشتش همونطوری که بیروی مغیره یا اول خطا کنها رو گشه بیروسن جمع زیادی از افراد جامعه چیه گذاشت طب تحلیل اون آقا ها فردا ممکنه جا به ایجا این هم چه همدانی نیست به, به طور بقول شما بزرگان مشکور که ایسی که خلاف مشکوره خلاف مشکوره هم شازه با بذاره میشه کنان حالا اینا بر خودهای تعبیری حالا متابقه دیگ و احتیاط میشه که فرد ارزه میکنه برم آساده علیه السلام خب همه چون این تحلیلی رو نداشتم، همه چون این تحلیلی رو نداشتم. بس این خب حالا شما آلید میگیم اون خدا هستم نیش که که که که نباید انجام داد، نیش که هیچ کدام از اون باوره ها رو باوره ها رو ما نداریم حالا خالد اینا نه این در تاریخ رو زدیم از اونت خالد ورقی ما تارت رو رزیار ندیده که واگه محمده به خالد ورقی دارید یا احمده بود محمده بود خالد ورقی کشکنید کنم رو تا بوده بوده است حالا من میام خالی خیلی هم خب مفذل بود مفذل بود مفذل خودش دلیل داده مفذل رو بعضی ها گفتم که وقاق بوده از طاونا این طبیق فرموانش که من روی کنم از داری وضعی رو خطابی این خلطه حالا برزور کنم برزور خب؟ این اتفاق افته خب، خالا همچه که امام باه رو، امام ساله سلامون رو علیه انجام داده بودن در, در, در طور تعریف گفت دو پرحله تاریخ این دو که باید که اون ساله تکنم نخواهد به نفرها ما یک نه همه باور با ویژهی های مشخص داریم همه خیلی بزرگی خیلی بزرگیان های بزرگترین کلامتی که از من و شما میتواهد سرزن با پذیرش اطاقت و امیان از همینه جامعه عمل به شهر این خیلی کلامت بزرگیه اگه میبتونیم بهش تحفظ میکنیم که یه اوقت تبیر حقیقت دیورو کچی کنم اشتر. این همگانی این همگانیه، همگانی یعنی چی آقا شما فرض کنید قابل برزاد من رو برزاد آتوگاه به حضرت خیلی جرید که در این وقت بودن برای این بخشن اگر من از اینوز تا آقا برونم بخوام امراض صبح همون سه در افتاده بخوانم بشه نمیشه یکی میگیم همگاه یعنی این دیگه الان فرق می کنیم اصلا تو دارو شد بگیدیم تشکیف می آدم نمشرف بشن الان بکن رو به اشهار بکنن مقرب رو چهار بکن میگن آقا من مقرب رو از امشب شب چهار بکن و اشهار رو به عنوان نموشه ها سرکت بکنن میشه نمیشه. اینا همه گانیه نمیشه دستوش ببری خب هر که از این محدوده آرام آرام داشت آرز می شود یعنی داشت که من ندارم شما نداری اون نداره اون نداره مفضل آمده ادعا میکنه خب حالا فرق این مفضل ادعا میکنه فرض میکنه هفته که بختری نشیده عبدالرحمن افداری عبدالرحمن نشیده زراره که زراره است دمقوم نقلو که زارا و محمد بن حسن بن عبد الله مصطفی السلام میگن آقا این قاهره خونه دو سیل معنوی که چرا ها ده قاهره دو بهش میارن با چخ سروازا و عمر باسا تامین میشینه از این را ما نمیشت ادم بن محمد بن حسن بزرگ جمعی کسی بیاد میگن اینا خوشحال بودنشون یاری میشوند مثلا فظل گفتم آقا حضرت نامه نوشتن میگن چی درورد اول بود به خودشونده کنید میتونم آقا پول میخواد پول. پول نیاز داره تو میدین تا میدین یکی هم در بکنم ماند کردیم یا حساب و حساب و رو نیاز کنید یا با دریم یا نداریم مفضل در صفحه بعد بعد صفحه صفحه انداخت خارم شمس درست کنم این باید بره حسن لارد، محمد میکنه و علی من ارز میکنم آقا پول چه اینا اومدن برن خوب دستشون را به تغییرید حضرت تو این نضیه تویش رو گهه بود دیگه مفصلا رو پیش او ازا رو هم بخوریم سر اتدارن خادم مفده دو ح در هم میده اونجا. هرجم معبی از رو برگشت کو اصلن رو گفت تو به آب مکرتم باذ میخوااه هست او معم جا پیش گفته اون چیزی رو به اون ب شق زدم مثلا به اون صبیه آم بهخوا هستکن؟ این همه که من دارم میگم مرمالی میگه بینا رو بسه میگه بینا رو برای مصرک خسته که در برشون اینطور برای اون چه خوش کرده دم داره این فکره برای خزه در موردش بکنن خب خب این قبلیه اومد چودتوار خب ایمان بحرانی آنستادانی مصرم و سته تو چیزو گذاشت انسه میهن برای از این درم برای اینکه انستان راست و مفصلی من باشه میخن مر... مسیری رو که جریان این طراففیبللو تم می کرد شاه خوحاق بود باشه که او با درس اون سال غ سلام ترسم کردهیم درسته یعی اگر اون جریان میاد جا میگفتم چرا شما تو گزارش ش می کرد می کنید لو زار رو نظر او گ درسط قا می سافری مقابل این جریانه چرا میکنید لولا زاررا و من نظره حالا به این من ما کانا احل رو میگستن به تهابا کسی این نمیفهمی چرا طفل بزار بشه دیویست دیویست کشتی جرپی رو آن عبور بیشترین دشمنی رو با زرار محمده رو مسلم برد و عبو وسیر برند چون ما ادامه دهندگان اون خطاب نمیزنن مسته اون سر جا به جا بشه نکه نمیزنن جا به جا بشه اون سوره بالا ترین حجم از آموزه های دینی رو دارن توان دستگیری تو اون سه اون سره دستگیری دارن و چون این نیاز همه جامعه هست گیره سرخانه گرد میداره خب جریان من اول شما سه میگه فقط جواب داد، یه سلام گلستان سرکوشوی چار باشه خدا. از عزیزجا باعث بفرمایید که مؤسسه خواستم اولش بگم این تلفن چه جواب دادم و صدای برای مراسم وامای تعلیق مایید. خب. ما به خاطر اینکه اون سه قسطه باقی بمونه. و به تعبیری نمایانترین جزئی از اون امس عنصر که پای بندی عملی به شریعت هست و موجب سعادت امسانی و تنظیم روابط شخصی خانوادگی اجتماعی میشه اینا دست نخوره دست نخوره به تعبیری پشت صحنه تئاترها رو باز فایده میارم پشت صحنه کسانی که در علیه به تعبیری جریان اینا رافیه بودو اونا که برای روی صحنه بود پشت تحنهی کسانی که با کسانی که استشمام آموزه های آلیان از عادش میکردن به قرارش این وضعه بود یعنی اینجوری نبود که ما میشینه بگیم آمو محمد بوده پس همه چه آدم مقصدی بوده نه از اینجوریست صدق چه آدم نبیره مثلا خوش که یک جانب نگره اصلا اینجوری نیست. می جفا داریم میکنیم، چون تعبیر تاریخی نداریم خودمونم خیلی مثلا حالا یه بویی میکشیم مثلا حالا یه یاری هم میگیم اون ورش این جزئیات و ملاغی همش اون اینو چک میکنیم میگیم مثلا ماتقد ولایت پذیران ملا در تعبینی بوده ما اون هر با خب ولایت پذیرنده بعدی گفتیم میگیم کی مثل زانه ایشگاه است این اینو تجربه میگه توی اون هسته سیما هموالی اونو و من توضیح خواهم داد توی این مساهمی که از رو فقط همسنگ شما قدر بگوسته؟ چرا شما حدیث که میخواهد؟ بخونی نام رو میخونی؟ گفت اونها حاملان نورن. یعنی خود محمد ابن عوی اومد اینکه حامل نور بوده خودش نورانی شده. احمد روحمد احمد نیستان اینا باور واقعی که از خودما من در الان میرم ممکنه هیچ کدم از شما رو بردن نبینم ولی آنچه که اینجا میگویم چون در برابر وقت شما مسئولم ممکن در آینده علمی شما تحسیز داشته باشه این رو از خودما بشه در الان رو ها اینجا آنچه که باوردانم میدم این نسبت رو دیم به نوع خودم به خبار خودم هر شده خب حواس مون پش زراره و محمد و مصرم و ابو وسیع و مفضل رد همه این راویان اینجا بینم چرای اینه بکتی اینجا بینم چرای اینه بکتی خب, خب. پشتی سحنه کسانی که با راویانی در افتادن به این مناک قذیفشون پردن به این دلیل که آموزه های قالیانه از احادثشون رستشون میکنن این بود که در یک موقعیتی در یک بازه زمانی با وجود احبابی ممکنه همون اتفاقی که در عصد امام با سلام با حضور امام و در عصد امام صاحب سلام را را را را با حضور امام و به دست کسی که کنه، من میگم جناب عوال خطاب رئیس استثاد انتخاباتی امام صاحب سلام بود اموزوش کنن همدسم ای اول خطا فی ما داکان و یحمد المسائل و یجیب جوابات ها پیامات خصوصی بین اصحان رو اون برده می آورد نه بارتر از مسئول برده بارتر از مسئول برده خب اصحاب در مقابل آنچه که استشمان و قلوبه ازش می شد استشمان و قلوبه ازش می شد به این مهم خیلی در مجموعه منظومه باور باورپذیر اونها هم بر اساس گزارشات مسلم نقلای مشهور جای نمی گرفت مرذگیری کردن مرذگیری هم کردن نه به این معنا که تجویر. این نگاه این برخورد خیلی منطقیه شما ممکنه بعد از این جلسه عرائز بنده رو تقسیم بندی کنید یکیتون بدید 0 خوب یکیتون بدید 20 یکیتون بدید 15 او که میده پونزه یا او که میده هفته منطقی ترین برخورده داره چرا؟ چون نشسته گفته که بسم اللهش که بسم الله بود دیگه سلواتش که سلوات بود دیگه یه شفیم هم ترخندیدیم؟ گر کنمش دوزار میارزه پس ما بگیشت چی چیزار؟ تضعیفی و برخوردی که از در درگذاره تعریف کردن غیر از تضعیف و برخوردیه که ما به قلب از تاریخ برداشت کردیم یا به قلب ما انتقال دادن کان حاضر ادعان گندتن نه؟ نه اصلا ادعال گنده نیست اصلا ادعال نیست بله قلوب باعث موزگیری اصخاب در برابر بخشی از احادیث و راویان ناقل اون احادیث شد اما اولا حواسشون بود که آقا محمد بن مسلم تو کتب سیگانش کتاب های فقهی هم دارد محمد بن اربانی تو کتب سیگانش کتاب های فقهی هم دارد عبوط تو کتب سیگانش کتاب های فقهی هم دارد سلیمان دلیلمی در کتاب های متعددش کتاب های فقهی هم دارد زا آقانها رو و بسر دست نفسه میرن که اصلا بست سندی نیست احادیسی که از نظر اصفاب ما محتوش بیره قابل پذیر شد حالا کار نداریم سنگ من حکشون و یاروشون درسته یا نه خبتان آقا ما اینا رو تحمل, نه... تحمل نمی کنیم یعنی به تدبیری سر درس نه سر درست نمیریم از استادمون بشنویم برای کسی هم تدریس نمیکنیم، احادیسی که قرائن و شواهد و دلایل و صدور از اماما از نادسمت فرامان بود اونا را هم تحمل میکردن هم تحریص میکردن هم حکم به وجوب عمل بهش میکردن اگه چیزی این بحثون میخواد بمینید مرحوم شیط توسید تو عده تو فراز زل به یک عده تو فرازهای پایانه بحث خبر خبروهادی ترمان و اما ما و کدالک القول فیما ترمیح المتحمول و المدقص و این کانان ها نارک مایت به دوره باید به اونقیندهعل سفت ها و جل عمله بر یا مثلا ابن ودی بهصدلو که اهل تعامل نسبتتا سحگیرانه با این دسته از آادیز هر هرچی که ابن رو میگه توی تابای دیگه هست تم و علی ها یفت تابع فقل داید. این شد به جرریانی که اتاب ما در برابر جریانه قل و مضوع گرفتن خ این مه یه دلیلش اینه که آقا من خیلی مهم بروف آقا من نمیخوام در آینده به هر دلیلی مجرای انتقال معارفی بشم که من ازش افسوس خطر میکنم الان شما هر حرفیلو میزنی؟ به مرمی هر حرفیلو میزنی؟ نمیزنی که؟ بنده اینجا هر وقت بیا بستی میگم؟ نمیگم که درسته؟ خب خب ممکنه بگید آقا این بوده این موجب شد که بخشی از معارف کرده نه موجب نشد چرا؟ من اینجا نشستم به عنوان ابن ولی فرض میکنیم حاج های ترین نشستم به عنوان محمد ابن علی ماجیده بی. بیگم آقا این کتب یه محمد ابن سنان را من مثلا من پرشت حدیث داره من هزار و هزار و و, و نقل کنم. استسقام زن نه چه پاره می کنم رفوا خیلی مهمه نه چه دور می ریزن. نه چه میدم دم آب نه خب آقای پرنیان که محمد ابن علی ماجیده هستن میگن من به اینا مشکل ندارم من اینا رو تحدیس میکنم. یعنی من به عنوان کسی که دقدقی دینی دارم و احتمال می دهم این مجموعه در آینده روزنه ای به شرب برای سوه برداشت و زر بزدم به سوم سری که اون نناثر همگانی است و همیشه وارد باشه این آقا رفقا الان من ندونم امیرالمومنین سلامالله علی سلام اوله اگر مدیر رو عالم فرقت کرد درس به نماز سوم نه زکات هم رو نه موجب میشه من غیبت کنم. اما اگر نماز اون را خونم من قابل باشم امیر عمومی ثونه مدیر رو حالا میخدمت نماز زکات زاکدنم تهمت بزنم ریور بکنم واجب ال عجبشان هشدارم خب من که یهودی اومد مشهور میشنم من که گوش در عمان روز می آورد من که من که من که من که این ای ای اینو اینایی که همگانیه و جللله عین الدین تو اینه اینه و همه باید بمونه خب حالا من اسمو نمیذارم طرز تاریخی حالا یه اتفاق دیگه افتاد که ما باید وقتا به اون توجه نمی و اون اینه که در گذر تاریخ به خاطر برخی از ریز موضوعات مکره در مباحث امامتی به این حساب خلاف شد یعنی فرض بفرمایید آقا شما ابن ولی من سیدرضا درزا و فرض میکنم تقیی فرض میکنم من نمازم به باقی میخونم زکاتم و میدم حجم رو میرم خب هیچ کدام از نمادها و علمانه های شهر رو کتاه نمید. اما وقتی وای میسم از آن اقام رو میگم شهادت سالسه رو میدم ابن ولید من رو قالی میدانم اما عینه با چمن ها این قلوبه، ایتسیده گاس. یعنی این قلوب اون قلوبی نیست که شما تشوع تو علا تفل الله تبارک و این قلوب اون قلوبی نیست که شما امام صادق علیه السلام رو رب میدانی، دین رو قبول نداری ها و اصلا کلا میری تو اباهی گری آقا من شما میشینید بحث می‌کنید، فرض می‌کنید. شما میگید آقا من بحث سهم نبی یا اسا نبی را نمیپذیرم. میشه شیخ مفید من میگم مثلا شیخ میگم حسب روایات متعددی مشهور من قائل به صحو نبی هستم منی که نمیپذیرم میشم قالی علاوه که نمازم سر جاشه چی رو دارم عرض میکنم میخوام بگم در گذر تاریخ ما با یک پدیده ای روبرو شدیم که تو داوری های رجالی اون تاثیر گذاشت ما این بره تاریخی ازش بافلیم یه موقعی ما شب داشتیم ما بعد ییده بودن که با ما خیلی بد بودن با امصام خیلی بد بودن واسه جاهاها خیلی بد بودن حالا ما که اصلا حالا تاییدن صرفی و دیده بود که من از فرقه درزا سنی شیرازی و فرقه قالیه یه بیزارم من خود حاج اینجا تن می‌خورم به خاطر قضیه شون اونجا شده بودن جزء فرقه قالیه شوبیری هر برام چون بالاخره یه دونه سواری که آسه جواب آقا داشتم خیلی به غلط من درش بگیر آسه جهال آقا می دونم که من خاک باید آسه جهال آقا نمیشم واقعا می یعنی من تنها غیر منظومی که باز تک تک شراشر وجود هم بشه می دونم بگیش آسه جهال خب این مجموعه باعث شد که اون مفهوم در گذر تاریخ چهار تحول بشه یعنی اگه شما در اثر امام صادق علیه السلام میگیر غالی ها به تعبیر شما اصولی ها چی یابد و لازم؟ مقابله مصالح اباحه گری مطلق و رب دانسن اجازه نمی دیه که نامق را من یز اوا الله انبیاء ان نامز اوا من یز اوا الله اربا گزارش های کشی رو حتی از افقا زیر ابن سعید و عبال خطاب بخونید خیلی نکته تاریخ داره اومد تو گذر تاریخ حالا بگید غقیق شد تحول به ما دیگه این مجد توجه نداریم مزان بگیم آقا فلانه بگیم محمد ابن سنان محمد ابن سنان متهم به قلوبه از روز اولی که نظریه پردازی و داوری در مورد رجالی ها از روز اول به لفظ زدن ها پیدا شد که فرزبت شازان گفت آقا ایمانت تذابیرن مشغولی نه این وقتر ابن غذایری گفت اومدیم این وقتر کشتی گفت اومدیم این وقتر نجاشی گفت اومدیم این وقتر شخصی گفت همه زریف میدوننش اونه که دست به قلم بردن ها از خود ها ولی این آقا به احمد بن حلال گفتن آقا این شریعت هم بلده گفتم من کتاب مثلا من از میکانم کتاب تو قارات تو اون کتاب میشه اون اون من تو میگه شریعت بلده ما دو چاره این این به تعبیری چون ببینید الان فرض کنیم یه موقع من عرض می‌کردم تو بحث اینور اونور می‌گم مفیده یه موقع مسئله امام فقری اغا سلام درس داشتید اون موقع هر روز مردم آیت الله فازل زنده بودن گفتم آقا ما الان میریم دفتر حاج آقا موسیام میگیم با آقا جواب کار واردبی پیش از ما نمی پرسه کدوم آقا جواد همون جمعه بگیم دختر آقای فاضل میگیم با جواد کار داری هیش که نمی پرسه شما تو دفتر آقای فاضل واسه جواد میشید آقا جواد اینجا میگیم نه چرا چون یک تبادلی، یک انصرافی حاصل میشه وقتی معنی مورد ابن وری تو زمان خودش داریم میگه غالی یک متبادر دارد یک منصرفان مولد اینا رو ما چون واقعاوی ن کال برچی کافی نکردیم آقا محمد ابن سنان او چه غالیه بر. محمد ابن ابو عب... سامنه او چه غالیه همه شدن هم غالیه و حتما میدانید که مهمتر این آسد جواد آقا تو کانال ترائفشون از بنده نیست در, در درس اصول سال 1396 اون گذاشتن حاضر محمد ابو تو کتاب و نکاح دارن میدن کتاب و نکاح دارن مهمترین عامل تضعیف را یا نشی ای قلوبه داره آره داره. حالا من که به با دردم کنم باستم مستعد کنم به بزرگم هلگی نیستم ای بیم تمامیش کنم این به نظام ما نهرم قائل بلوحیت و امه هستیم نه قائل به ایواهای یری هستیم پر خود اونم میکنیم قد فهم اونم انجام بدیم خیالتونم راحت باشه درمه کنیم دل نزمی یه موقع نه ترسوننتون آقا تو کافی بفته فلان از از از براتوز براتوز براتوز برای توی خواهشی کفتوی فلان یکی را هم از حضرت آیت الله و حضرت بپرسه که آقا رفاها برای خودمان تعریف کنم بپرسه که میخواست بپرسه امه علم قید دارم قبل از که ایشان بپرسه که آقا فلان عالم و فلان عالم و فلان عالم و فلان عالم این آقای دارستنش این دفعه پایین رفتن یه اکی از اشخالهای ما اینه برخشی تا ما الان توی یه سزای که امسان های سارو که رامد یه خودشون خیلی نفی کردن یا ما ایقدر اشتغالاتی فهر اصولی داریم، این دنبال دوزارون هستیم مثل بنده اصلا نمی‌ریم دنبال اینا یکی ای از نکاتی که باور پذیر میکنه وقتی از باورهایی راه یافته به روایات ما رو دیدن این آدم هست یه آقای بوده اینام برمه اصلای منطبت شما این چاشنیه یه ای شاهده نه کی آهی بودم توی میگم کسی دو روزه قبولتون نداره نام اونشون چه بود نامم نمیبره بلکه آدرس ما تقریبا تصادفی هم سفر شدیم مشهد دین ارزم کنه به دو حد گفتیم که بفرما هیچ تصو دست کم نمی گیرید شما قبول اوتو داره او نداره چیکار کنم بگید شما امامت تمیز او کسی که محایتا هی کاغذ نمیست میگه عزیز نم تو ولی این که من امامم تمیزه بیس خدا برم میدونه اماش کسی رویش میده دوازه رو از این خورمان هیچ کس رو دست کنم ایشون میگفت ما با هم, هم سفر شدیم رفتیم دو سه روز مشهر توی چهر روز هم من خرج می‌کردم، من خرج میکردم یک شب ایشون به من گفت که فلانی من بدم پرم و یکی دو ساعت دست کردو جی بشه مشکول مثلا مچاله و سکه و مکی داد به من بعد من رفت ایشون که رفتن تو روش نور رفتن در دیگر همون وقعیمی که خرش کردم شد یه ساعت شد دو ساعت شد سه ساعت, ساعت دیدم نه اومد. تنها چیزی که به ذهنم اومد بزنم بزنم کونه شد زنگ زدم گفتن که مثلا آقا هستن گفتم بله مشکل بودن اومدن فستشون نخواه بودن ما ترسیدیم به تفصیل نه اینکه که فردا رفق منها عباطه بزن زیر دوشه درد کنه هر چیه در کنه هرچیسی لونگ بندازان نه اشتباه نشه ما دوباره یک فقر شدیم این فقر هم ما رو می سزونه. هم به معارفمون همون زرر بزنه هم به رشت ضرر زرر بزنه اینه که نیستن یا نمیخواهن خودشی ما بعد دست قرار بودن شب در سمیه که ما اهل عمل وقتی به اون گفتن باید عمل کنیم دیگر ازا میترسیم آقا کافی گفته اینجوری کلونی هم مثل یه ریگی به کفش شد آقا محمد ابن هستنم وزید که این روایتی میه روایتی رو محروم مفید ازش نقل میکنه تو اعمالی مثل که اونم وقتا دلش میخواسته یه چیزایی بگه مثلا ترمزش از دستش رفت مثلا از این قبالش شما در مجنون در مجنون در تو کتب معتبرتون با یک مجموعه معارفه با این ادبیات از طرفون هم میتونید بگید بخوام با یک مجموعه معارف امامیه باورپذیر و تا حدودی حد اقلی رو هست حد اقلی حد اقلی. فکر نکنید این ته مجموعه مثلا کنید مقامات اگر جمعید سلام و زدنید. نه اون چیزی که می شده و زبون بیارن اون چیزی که رضا حضرت فرموتو تو کافی اگر ظرف می می اگر ظرف می دیدیم می گفتیم حالا چی میگفتن ما چی میگفتیم اونا چی نه نه الان ما تو مجله یا اونی من بذردم بابا اثر اعتیاد بذردم تو مجموعه های متداول ما مثل برسا رو در آوردن تو منظومه شما باور انقلابی نداریم چون اون بسعه بعد جلسه من به فاصله وظیفه دارم نماز میخونم برام مسئله امری علیدی اونجا تشکیم یعنی؟ دسمن از اونجا جلسه آقای چون نمیدید بخورد با هم دیگون من که تو عمرم من دوبار بشه نخوردم آقایش حقیقت چون نمیدید محمد بنیسف <و> نویدو <نوبيت> میگن که بقیر این نهو کانا ید هبو مرد هبل غلاط معلوم شد نه اونجا حالا یه کتاب رزوان هر درجه مدرس بایی که از دوستان نوشت تحت عنوان محمد بنیسف نوید در آینای پنج گفتار اونجا گفتیم که شیط توسی چگونه با این آیا اونو با عنوان شاهد اعوده به نظر میاد شیط توسی برای که زید پای تزدیف و میکنه. یه دیگه دیگ بازی رفتو مثلا میگن آ ها یعنی مکلاس کلا دم پایم میکوشه آ گفتن دم پای میکوشه ها دم پای میکوشه داش اول کردی تو اول من نمی داشه به تعبیری آره این شیخ خواسته بگه اینم هست من فعلی بیراه نمیگم اینم هست شما عوج گفتم ها و اصلا نگفتم روابط مجبور زیاده گفتم راویانی که رجالی ها به اون آ جزم که اول کاش پورسلهبی تو رو اعصاب ما به اینا رو این قسمه هلا معلوم ساب منطقه تو جوان الجمان جلیه که معلوم شیخ حسن ابن زندین آقزاده شعیدستانی جزید نوستان میترمونن تو تحلیل های سندی معلوم ساب منتقا قرن از هم اسرانشون جلو پر بودن این فرمون شدن نوستان کتاب به نام منطقه الجمان فیل احادی سسته میخواستن یه دو فقر رو بر اساسی احادیس صحیح هستن نمیمیسن خب عمرشون تا اتفاق بولد میشن که اتفاق نمیده اونجا یه مقدمه دارم تو اون مقدمه دوازده تا فایده سکت میکنن تو فایده تاسع سه اجل به یک سرفه سی که ما میست افرادی رو میبینیم که خیلی حدیث دارن ولی گروه اصحاب ما به شما مهند بشته با شما بکنم بشید اتفاق رو چرا این کنف ب اونجا این نکته می فهمان بشون که نکته اساسیه می فهمان اینا کتاب نداشتن و مداره به تعبیر رو چرده از خواب ما در دور بین انداختن و نگاه کردن بلاویان این بوده که ساعت کتاب باشن لأن المتقدمی من رجال از خواب نام مثلا کامویت کرونه از خواب الفتول و از ایک فتولا قاهمید این همچین معنی خب خب حالا دو تا برخورد دارم یه اده مجبول میدانن و وقتی مجبول میدانه یا می لهقون احادیث ها و بر احادیث زعب خب یه اده نه مثل مکتب و ازدت آیت الله شو و مکتب و سیرین الارستان گفتم بر اساس اون راهکارهای اغلائی با یکی از این سلاح اینها رو توصیح میکنن یا اینها شیخ اجازه بودن چه چه اجازه یعنی چی؟ اینو پس کنید آقای پرمیان یک تا اون تا کتاب حدیثی دارن تعلیف کردن من کتاب حدیثی ندارم اما این وسط یه نقش بازی می‌کنم نقش ما اینه که کتاب‌های حدیثی محدثان قبل از خود را حالا چه در طبقه اساتید هم که در طبقه اساتید اسفارم رو قبل اینها رو اون شلایتی که اون موقع حاکم بوده درس و بعد رو که کتاب آقای پرنیان نست کتاب هفت سبنه بختری است به عنوان این انها بشید درس یا به عنوان این که انها به مشایق اجازه یا به عنوان این که اصحاب سقه ما پراوان به اینها اعتماد کرده و پدیدهی به نام اشتار تغیب که این هم کتاب اخیلی که کردن حدود 6-7 ماه همه اینا رو عوردن یا این که اینها جزد مشایخ ابن عوی اومد سبخان ابن دیگه هست ولی عمده اون سمهوری که از نظر این بزرگان اونجا به اثبات به میشه هم. اگر اون کتاب آه مصرق داوری اسمشو یاد انزد حسول در دزار و اینه نظریت و تطبیر اونو ببینید مسادیخ زیادی اونجا بردن که میشین افراد رو کدومش درسته کدومش بهتره من که نمیتونم دعاولی کنم من دیگه یه عقیله دارم این هم این پنشنبه که تو مرسه ها. مرسه منصوب بره ولی در سری مرسه دارم این دفعه ها اگر ما بخوایم واقعیت رو ببینیم و دموقع حقیقت بگردیم هر چی با هر مرسه و تو تبسیم بندی سریع حسن موسط زعید. و خاص فقط از مسیر اسفات و ساقت ناویان بیره جلو فرید خورده خاش برده همه ولی چرا؟ چون این پدیده این با روح آکنه بر فضای احتوال سنگی عادزشیه بیدان است ی خاطره رو از رفقا از من شنیدن میگم چون بعد از رفقا هاشون جدیده حالا عرض میکنم یه آقای حدود در 11 سال پیش با من تماس گرفتم گفتن آقا من جزءه رجالی اونا که شریعت ورود به صدر چورت بزنمش حل نوره یه جزوی نمیشم 220 صفحه تو بخشی از مکاتم از اونمضا رو نقل کردم میشه بخونید یه ببیننم باش رو حالا نمونه هارو رو گفتن آجام موسا سهله زیاد رو توصیح میکنن من تزدیف میکنم آجام موسا عبوط رو میکنن تزدیف میکنن من توصیح میکنم خبست زیاد دو پشت هزار شیستر صدرهایت تو کافی داره من دو تا روی درست کردم بینی و بین نظریا گفتم به نظر شما مبعونای حاذم و وصاو توصید سر بیشترین بیشترم علا به نفع احادیث شیعه مردمان شما صار اینا شنیدم به اون بره گفتم مبنای شما مبنای حاذما به نفع احادیث شیعه از مبنای شما به zarar احادیث شیعه سش اندافت پای این پایین گفت که معلومه zararه نقطه اول نقطه دوم عرضم این نکته دوم رو روانه بکنید مبنای متأخرین تهش اینه ای جسارت هم نیست بنده دلم میخواد خلاهی متعال آرزو میکنم خلاهی متعال ثواب بای بسم الله رو که مرحوم علامه اینه ابتدای کتاب و منتعانه به من بده همه ای کارایی که کردن بگیرد اشتباه نشه مبنای متأخرین تهش اینه. شما یک دایره بسته دارید با تعداد ای محدود پس کنید بیست تا مهره گذاشتن تو این دایره این دایره هم بسته است بسته است یعنی چی یعنی روزانه وا نمیکنه یه سری بیرون رو بکشه گذشت تاریخو ببینید شما میگی آقا از این 20 تا 17 تا سفید 3 تاش سیاهه اون میگه نه از تا سفید 17 تاش سیاهه اون میگه 12 تاش سفید چهار تاش زرد 16 تا تاش همه تو این مه و تو این محدوده بسته در حت میکنه. این اشتباهه به دفعه گفتهگوی بود بینحملول سراب ها شده سرین لستاد ها فظاه الله و اوقا و روی خدا مست حالا من نقله به برنا این اینجا رو. ما میدونیم زام و تفرین اشکالاتی داریمره میرییم توش شکالات رو برطرف میکنه. هر میگم نمیشه برطرفکن. تو این اشکالات ظاهییه. ذاتی و شایدنم یک کل معللن ولا نمیشه ذاتی بودنش به خاطر اون که با هویت حدیث شیعه سازیگاری نداره. آقا اونایی که اومدن خب یه سوال دیگه بعد چین موقع روزو بگیره نماز بود چیه؟ روح حدیث شیعه کتاب محوره نه به معنای که محوره روح حدیث شیعه کتاب محوره کتاب محوره و تو این نکتش که اشتراک اجمالی ما داریم با مردونای فیقست نهبری بینید ورود که ایس سوال بکنم آمان کدوماتون یه دو سه رست شیخ توسید این ای سوال واقعا استقام برای چیه ها استقام چیه شمیگم؟ میخوام یاد بگیرم میخوام بفهمم شیخ توسید تو ما قدمی که که آقا من کتابم محصله. جمع آوری فهرست‌های پیشی نیست که کتاب‌های متداول برآج اسباب رو هر کسی تو قرآن نگامید مثلا شیخ محمد سی که کتاب داشته اون رو فهرست کردم من 200 داشتم من اینا رو جمع کردم هم زدم تو دیدید خب شما فهرست شیخ طوسی رو بره بزنید چم میزان تصدیق و تزویر تو اون می‌دونید چرا محور دوران کتاب بوده محور این بوده که کتاب جای خودش رو بین از خواب باز میکنه و میشه مرجع یا بخشی از جز از مجموعه از این معلوم شیخ, مف... معلوم شیخ صدق تو مقدمه چه میگن؟ نمیگن و جمعی و معافیه اخسته من مشایخی از الذين اخذوا اخدالعهادیس من مشایخ همو تقاط الَّذینه و جمعی و معافیه مستقعدان من كتب مشکوره علی حل اول و علیه مجب جالبه تو اون مجموعه نوادرالحکمه ای رو نام میبرن که شیخ خودشون به هیچ که گسته جالبه تو اون مجموعه محاسن رو نام میبرن که تبقیه میفرمایشه آقای خالد ورقی کجا میکنسن آقای خالد ورقی شما رو خالد ورقی هستی آه که احمده رو محمد ابن خالد ورقی و آقای اتم دول مراسیده مهور کتاب ها بودن این خیلی این فراموش شد. یخ فراموش شد و وقتی فراموش شد شد چی شد جزیره ای نگاه کردن حتی تو این جزیره ای نگاه کردن شما نمیری از بالا جزیره ای هرمز نگاه بکنی یه دستنگی به ببینید این سنگی قرمزه بعد میری پایینتر یه سنگی ببینید این صورتیه نه جزیره ای هرمز از جز... از سنگ ها و صخره های مثلا رنگارنگ است این خیلی مهمه روح احادیث شیعه روح اتنام، و طبعیت و اخوز به کتب بوده با شاخصها و خروجی ها سباره که ارش کردم. این بحث که آمد توی به طبیل اهلسان نبن روحه در این کار رو بیارم مرحوم علامه هلی حالا به بیان این فرمایش اشتشمان مرحوم سید احمده متعوسه استاد مرحوم علامه هلی و داود هلی حالا کار نداری. مبرز این پدیده و این رو که از علامه هلی هم میگه مرموم علامه هلی تو منطقه مطلب دست میزنن به روی که این تفصیل حتی سعی حسن مبسط یه دو تا مقاله نوشته شده دیگه اگه دفقا نخونده اگه خونده دیگه نگم دو تا تحلیل دو تا تحلیل که یکی شو به تحلیلی مرحوم شیخ بهایی هایی تو مستقه شمسه یکی شدن مأرموم شیخ حسنم زید الدین چیزی بودی که منتقا صفحه 14 میان آقا متأخریم چون قرائن فور شدن اون گفتم ایشون فرمااد که فان القدما لا علم لهم بهذ ولاستلا قطعا اونو شیخ حسنم واسطه نمیدونست نمیدونستان چون میار نداشتن لستقنا بکثرة القرائن الداله علی صدق الخبر معنی شامل طریق و طریقه, طریقه. طریقه. طریقه. از من این ذت ای که جا ها میان نما می بین. حالا من درصد تریچل قرارم استطرل متافون به یک بنای جدیدی و خب اینو با این تعویلر میشونفهمماه معرو میشهره با هم تو عاشقشانسین دارن اما قرینا هایی که دلالت می بر اعتبار اخبار رفت ما مستر شدیم، نصب کردیم، تجیم برادرانمون بگیم، علی که کشمند میگه. بگیم سائی حسن موثق، اونا موثقم نذاشتن، مو اضافه کردیم لیست سائی حسن موثق زایه. حالا دو تا مقاله نمیشون، یکی آقای محمد حسین افراخته نوشتند، تحت عنوان قلمای قلمه و, و ورودی مکتب تشریعا فرمائشه داریم، کده معلوم علامه حلی رو به منتهی تا تحریف کرده، که میترهون این رو کرد. فرغم مختص به منته و کتابی که مخاطب خارج از مذهب تشعیه هم داره و محروم علامه رفتن سراغ اصطلاحات مشترک پیه ایک شواهد نسبتاً متعددی هم اقامه می کنن که محروم علامه در کتابه های دیگریشون به ضعیف که ضعیب و اصلا اشاره به زرف رویت هم نمی کنن بعضاً هداره را بیستن ته کتابه راهی بود محاشه اونجایی که می یکی از قرارانه و ساقت رو رویف سنده محبوم به صحت بیاره برماشات علامه رو آورده گفته اصلا معرومه علامه عملا تو اونجا روست اصلادی که میگه پارمند مرامه متأخرین نیست یا مقاله هم جناب اصدار احسان و سرطه ای در خصوص تحلیل دیگاه شیخه باعیی که ایشون فرمونه از بین رفته خب چون میخوام یه وضوعی هم بگیم و یه سی جمعه به ش من فقط دو تا جمله میگم همه ما تمام حرکاتمون و مرعا و مرآ و وجود موارد حضرت حجت بن شدیم پتو بریم توی زیر زمین چراغا خاموش کنیم یه کلمی و حالا الوئی رو هم میدن به اعمال من هم این دادن رو دادنه وقتا واسطه بوبوز حضرت همراهه خالص کنه دیگه یه کاغذ بذاریم جلو و امشب امروزمون رو مرور کنیم امشب مرور رو بای وقتا می می که حظا دومرگی چیزی میگن که حالا بوز نیست نگام میتونه والله خام پولا، عامل دوام حماتون جوون بود حالا بعضی بعضی اگه دوست داری من بازیش کنم، نه حاجا آره فرصت اون دوباره به کسی داده نمیشن اما تو این فرصت اوم فرصت قصد در عزت حجت به همه من درده بشن ما من منتصبیم به حالا بشن شما بود من دکه نوانده لات بی سر پایی گلوم برم اگه به اندازه خاک پای شما ها هم خلاه منتعار و ایشون برای من هرکش پایل بشن خلاه من هوا واقعا نمید یکی منتصب حواست نمیداشتی همطور که ایمانسانه من, ایمان من چشمم میدار شما بیاد من دوست دارم شما رو بو بکشم و ایمانسان دست میدارم به داری ازداره که از بفتن همه پیش بیاد به تو دوست نمیدارم و الله انکه احب و ناس و احب از خواب عبی علیه نکته دوما میدار چرا ایمان از خواهن باشتن در پرتو تدایت نهاد و منادی اسمد جریه کنن از مسائل فرهنگی زنگ کاری بکنید و کاری یک کاری بکنن. حالا رحمت کنه عاشقالالوزای خانیان که خاطر است من بچه تر از حالا بودن مرکز حقیقات کامپروتی و مسئله کار میتردیم واسه جوابه ها زعیم بزرگ بودن برنم حالا مثلا مدیر بخش بود یه مدیر گروه خود این پیر مرد وزین افتاده آمد برای دو قیرون روزی که بشن اندقاد دست من بچه کار بکنن این حالا چقدر برای من در آور بود که تو این حوضه یا آقای نظر رفته یک کار ولد اگران گرد دنبال کار رو گرده گفتن من تو جمعه میگم گفتن من از نظر آمده و اصلا که من تا گفتم گفتن من این کارا رو برده چی کار کنم؟ خدا فرمودن بگر دنبال کارهای در زن مونده شما بگردید دنبال کارهای لرزمین بوده بینید و فرقا الان قدود ده سال مدارس افتطاع میشن ای نانورید و ای نزنگی شد تا بعد چهار سال هم میونه هیچ قبل نفتیران اولش شعار، اولش احساس، اولش خیلیانه اول اول بعد طلب یا برنامه نداره، طول نداره، استاد نداره یک کاری بکنیم، یک کاری کنیم تهدا که سرمونو از لحب بلند سردی میخواست اصلا بسانا اینو میدونی اون روز اون خورش موجود شد این لطمه از دین برطراب بشه این لطمه بدین نخوره این آقایی که میخواست منحرف بشه نشون لا الله خورش که بیشتر بشتر هم کلا بذاریم اون آقایی که این برون داره من میخواسته نمیخواسته به هر وسان به برسی کار شد. ضرر نمیکزه. اگه قاشنا بوله دارموون نباشه، نماد چی شود، زکات شود، خمس شود. تو تا اون جانمونیش شهرها. ی چرا؟ تومانیشه، من سرسفه حضرت غیر مسلم. من سرسفه حضرت نمیخرم دیگه از اونجا. ها؟ خدا مال یک از چیلی قدر زمانی که آن بتونه ببینه چیلی فرصت بیرفقا بر نمیگرده. هر نمو داشته باشه برای خوبیش برای برسه بردان خروزه یتون من خانوالتون من خانوالتون و خلاصه سعی کنید از این مادم و هر کار نیستون گوش نکنید این خاتو قاربا جل سعی کنید یه چه ما رو گلیو خشک آوردنگ گلیو خشکم میخواد بکنم بیرون مثل این چه خب ما یه دربت یعنی بزرگ, بزرگ درست کنن بنده که به دربت رو فقاله میکردن این کلستران اینشالا همارتون محفظ میشه اینشالا دوار فیلی حضرت اوجه از جرال دوار فیلی خیلی خیلی تموم شد بیگه آقای هستیم حدیث خانی چه برادم بخش علاقان بل محتون لا یه مایه یه جاهایی که میریم مثلا بهش جاله به جال چند جلسه تو میگیشه یه مثل یه پتفی که به سر من بزنن یه ام آقا تو از شما از اون اول که مثلا ما معالم میخونمی بعدش رو زبقه کنمیم هیچ رفت نمیگی مثلا چند جلسه مثلا یه جال مسئال یا آفه شدان یه راحت و غلقونیه یا با میکنم به نظر حقیقی سرافت پرسی با اوزه باید برنامه داشته باشی همون چگونگیش هم اگه که تو زمین دانمیم فاصله عرض کنم خود نم طلبه از گاه آشناه شدن با فط من رو نمیدونم تو چی چی ما اول کتاب کتابی که میکنم تو شما چی میکنم من چی میکنم. شده سه سال پیش شدن از همون گاه باید باره برای یعنی جلساتی در هفته هفته دو جلسه داشته باشن برای طلب حدیث بخانن طلب حدیث ببوشش بخورن حالا از کجا شروع کنن جوری بگن چه آدار بگن که برای اینا ماندگار باشه اینا خودش شرایطی دارد که دیگه حالا متاسما حدیث پدیده بیگانه بیگانه یه آقایی داره که از شرف ها این از آخر هم سر دست روشون گفته بودن آقا چه نشستهی طلبه ها منحرف شدن طلبه ها کافی میخوانن بله ممکنه من بچه طلبه خودم به تنهایی برم کافی رو بخوانم منحرف بشن ولی بگو حوض چه ای برنامه نداری بچه ممکنه با تدار برنامه حدیث خانی بگذار این اشتیاق رو را ببین برنامه حدیث خانی بگذار این اشتیاق رو ببین امام حسین سلام علیکم آقای يا كان في دافع او عن